مهه کاکتوسی هیچ جایی نبود بروم پولی برای خرید گلوله گیر بیاورم برای همین تصمیم گرفتم جایی بروم که گلوله همیشه هست پاسگاه پلیس رفتم سمت دادسرای خیابان کارنی کاراگایی را ببینم که یک وقتی دوستان خیلی خوبی برای هم بودیم میخواستم ببینم می و چند تا تیر ازش قرض بگیرم یا نه؟ شاید شش تا تیر به من قرض داد و من به ملاقات مشتری رفتم و پیش پرداختی گرفتم قرار بود جلوی ایستگاه رادیو پایین خیابان پاول مشتریم را ملاقات کنم. ساعت دوی بعد از ظهر بود و چهار ساعت برای پیدا کردن تیر وقت داشتم. درباره اینکه مشتریم چه کسی است و از من چه میخواهد هیچ ذهنیتی نداشتم. فقط این را میدانستم که ساعت شش جلوی ایستگاه رادیو با هم ملاقات میکردیم و بعد مشتری به من میگفت چه کار باید براش بکنم. من هم تراشم را میکردم که پیش پرداختی آن وقت یک چند دلاری به زن صاحبخانه میدادم و میگفتم ماشین ضد که میلیون میلیونها دلار مرا می آورده نزدیک فونیکس آریزونا در مه کاکتوسی گم شده اما نگران نباشد چون بی برو برگرد مه دیر یا زود برطرف خواهد شد و آن وقت پول هم دوباره راه میفتد و میآید اگر پرسید مه کاکتوسی دیگر چه سیغهای است میگویم بدتری نوع مه چون پر از خارهای نکتیز است خارها به حالت بسیار خطرناکی در میان مه میچرخند بهترین کار این است که همانجا که هستی بمانی و صبر کنی تا مه کاکتوسی گم و گور شود. آن میلیون ها دلار هم منتظرند تا مه برطرف شود. دوست دختر من پای پیاده به سرعت خودم را رساندم دادسرا. به پیاد روی در سانفرانسیسکو عادت داشتم و میتوانستم توانستم سری و با گامهای بلند ول بگردم. سال 1941 را با ماشین شروع کرده بودم و حالا یک سال بعد، باید فقط روی پاهام حساب میکردم. زندگی بالا و پایین دارد و حالا زندگیم افتاده بود توی سربالایی. سرازیری برام فقط سرازیری قبر بود. روز بادخیز سردی در سانفرانسیسکو بود. اما من مسیر نابیل تا دادسرا را با لذت پیاده پشت سر گذاشتم. نزدیک محله چینیها دوباره در رؤیای بابل فرو رفتم. اما درست به موقع توانستم چادر شب ذهنم را کنار بزنم. چند تا بچه چینی را دیدم که دارن تو خیابان بازی میکنن سعی کردم از بازی که میکنن سر در بیاورم. ذهنم را که روی بچه ها کردم، توانستم خودم را از بابل که مثل قطار وحشتی به سمتم خیز برداشته بود، دور کنم. هر وقت که داشتم، کاری را به آخر می رسندم و در این اصنایی که بابل سراغم می آمد، سعی می کردم فکرم را رو روی چیز دیگری متمرکز کنم تا بتوانم ام را با بابل حفظ کنم. همیشه هم دشوار بود، چون من واقعا دوست دارم در رویای بابل باشم و دوست دختر اقرار به این نکته آسان نیست اما من او را از دخترهای واقعی هم بیشتر دوست دارم همیشه دلم میخواسته دختری را ببینم که به اندازه این دوستی که در بابل دارم جذبم کند نمیدانم شاید یک روزی شاید وقت. گروهبانرینگ بعد از بازی آن بچه های چینی، به دوست کاراگاه هم فکر کردم تا بابل را از خودم دور نگه دارم. دوست کاراگاه هم گروهبان بود. اسمش رینگ بود. پلیس خیلی خشنی بود. به گمانم رکورد جهانی خشن بودن را به اسم خودش ثبت کرده بود. سیلی حواه صورتی میکرد و رد دستش مدتها مثل داغ ننگی می ماند. در مقایسه با بلایی که بعداً سر کسانی که همکاری کامل نکرده بودند می سیلی فقط خوش آمدگوی دوستانی از جانب گروهبان رینک بود. رینک را سالها پیش، سال سی و که هر دو برای استخدام در نیروی انتظامی تلاش می کردیم، دیده بودم. من می پلیس شوم. آن وقتها ما رفقای خیلی خوبی بودیم. اگر ازمم را جهز می کردم و در امتحان نهایی نمره قبولی می گرفتم، چه بسا حالا هر دو کناره هم در نیروی انتظامی مشغول خدمت بودیم و مثل دوتا همکار به پرونده های قتل رسیدگی می کردیم. البته نمره من نزدیک به قبولی بود. فقط پنج نمره با پلیس شدن فاصله داشتم. رویای بابل گرفتارم کرد. من هم پلیس لایقی می شدم. اگر و تنها اگر می توانستم از فرو رفتن در رویای بابل دست بردارم. بابل برای من، یک چنان لست تو در عین حال یک چنین مصیبتی بوده بیست سال آخر آزمون را جواب ندادم به همین دلیل هم مردود شدم من آنجا نشستم و در رویای بابل فرو رفتم در حالی که دیگران سوال ها را جواب دادند و پلیس شدند دادسرا. من هیچ وقت واقعا توجهی به ظاهر دادسرا نداشتم دادسرا ساختمان قولاسای مقبر مانند محزونی است که داخلش همیشه بوی مرمره گندیده میدهد نمیدانم شاید فقط برای من است. احتمالا با این همه یک چیز جالب هم دارد تا به حال دستکم دویست باری گذارم به دادسرا افتاده و هر بار که اینجا بوده هم هرگز به فکر بابل نیافتاده پس برای من به یک دردی میخورد با آسانسور راهی طبقه چهار روم شدم و دوست هم را دیدم که پشت میزش در دایرهٔ جنایی نشسته دوستم دقیقا همانیست که هست پلیس بسیار خشنی که خوراکش رسیدگی به پروندههای قتل است استیک راسته یک گاو خوابانده در پیاز تنها چیزی است که بیشتر از یک قتل درست و حسابی دوست دارد سی و دو سه سالی داشت و حیکلش عین یک وانط دچ بود اولین چیزی که توجهم را جلب کرد. اسلحه بند سرشانیش بود که یک کلت کالیبر و هشت خوشیل مخصوص پلیس توش جا خوش کرده بود ذهنم مخصوصا متوجه تیرهای توی اسلحه بود دلم میخواست هر تا را داشته باشم اما بنا را بر سه گذاشتم گروهبان رینگ به دقت در حال وارسی یک نامه بازگم بود نگاهی به من انداخت گفت به به چشم ما روشن سعی کردم به سیاق خودش باب صحبت را باز کنم. گفتم، نامه باز کن چیکار؟ خودت میدونی که خوندن نوشتم به تو نیومده. در حالی که لبخند می زد گفت، هنوزم هم اکسای مستحجا می فروشی؟ جشن ولنتاین در تیخوانا؟ واسه سگبازا؟ گفتم، نه؟ اینقدر که پلیس ها ازم نمونه خواستن، دیگه هیچی برام نمونده، <تص> آن وقتها سال چهل، هنگام برگزاری نمایشگاه جهان در جزیره گنج کار کارگاهان خصوصی حسابی کساد بود و به همین خاطر کم کمبود درآمدم را با فروش یک تعداد عکس هنری به ها جبران میکردم. گروهبان رینک همیشه دوستش از این بابت سر به سرم بگذارد. در طول زندگی کارهای زیادی کردم که اسباب خجالتم شده اما بدترین کاری که همه ی عمرم کردم افتادن به این افلاسی بود که حالا اصیلش بودم. رینک نامه بازکن را رو روی میز انداخت و گفت این یا آلات قطاله است. سر ساب از پشت یه فاحشه کشیدنش بیرون. هیچ سر نخی نیست. فقط جسد اون فاحشه با این نام بازکن دم دریه خونه. گفتم قاتل قات زده بودن. یه نفر باید به براتشون نوشت افزار فروشی و فرقی پاکت نامه و یه فاهشه رو بهشون حالی کنه. <تصفيق> رینگ سر تکان داد و گفت چی بگم؟ نام بازکن را دوباره برداشت. خیلی آهسته آن را توی دست می کردند. تماشای بازی با یک آلت قطاله اصلاً مرا به هدفم به دست آوردن چندتا تیر برای تپانچم نزدیک نمی کرد. در حالی که به نام بازکن خیره شده بود و زحمت نگاه کردن به مرا هم به خود نمی داد گفت چی میخوای؟ یادت دفعه آخری که یه چوب گرفتی بهت گفتم که این آخریشه. پس حالا چی میخوای؟» چی کار میتونم برات بکنم الا اینکه که تا پل دروازه طلایی راه نمایید کنم و اصول اولیه پرش از روی پر رو هم یادت بدم. کی میخوایین تصور احمقانه را که توی کارگاه خصوصی هستی بذاری کنار و بری یه شغل نون آبدار پیدا کنی و دست از سر کچل من ورداری. کشور در حال جنگه. به هر کس که باشه نیاز دارن. حتما یه کاری هست که تو از پسش بر بیای. گفتم به کمکت نیاز دارم. کمکت آخر نگام کرد و گفت آه گندت بزنه. نام بازکان را روی میز گذاشت و دست کرد توی جیبش و یک مشت پول خورد درآورد. با دقت تمام دو تا بیست و پنج سنتی دو تا ده سنتی و یک پنج سنتی جدا کرد سکه ها را روی میز گذاشت و بعد به سمت منحول داد گفت فقط همین پارسال واسه من یا آدم پنج دلاری بودی بعدش یه دلاری شدی حالا هفتاد و پنج سنتی هستی دنبال یه شغل باش. به خاطر خدا حتما یه کاری هست که تو از پسش بر بیای اما یه چیز مطمئنم کارگاه بودن از تو بر نمیاد کی پیدا میشه بخواد کارگاهی را استخدام کنه که فقط یه لنگه جوراب باشه تعداد رو که احتمالا خودت میتونی با انگشت حساب کنی امیدوار بودم رینگ متوجه ماجرا نشود اما البته که شده بود صبح که داشتم جوراب پام میکردم در فکر بابل بودم و حواسم نبود که فقط یک لنگه پام کردم تا اینکه پام به دادسرا رسید و قضیه را فهمیدم خواستم به رینگ بگویم نیازی به آن هفتاد پنج سنت ندارم که البته داشتم اما چیزی که من واقعا میخواستم چند تا تیر برای تپانچم بود سعی کردم موقعیت را سبک سنگین کنم گذینه ها محدود بود میتوانستم هفتاد و پنج سنت را بگیرم و در بازی پیش بیفتم یا اینکه میتوانستم بگویم نه پول نمیخواهم چیزی که میخواهم چند تا تیر برای تپانچم است اگر هفتاد و پنج سنت را می گرفتم و بعدش در تیر هم میکردم شاید واقعا جوش میآورد باید در نهایت دقت عمل میکردم چون همانطور که قبلا گفتم او از دوستان من بود و خودتان میتوانید تصور کنید آدم هایی که از من خوششان نمیآمد چه تیپ آدم هایی بودند به هفتاد و پنج سنت روی میز نگاه کردم بعد یاد بچه خرافکاری که می شناختم افتادم نورس بیچ زندگی می کرد. تا آنجا که یادم می آمد، یک وقتی یک هفتیری داشت فکر کردم شاید هنوز هفتیره را داشته باشد و بتوانم چند تا تیر برای تبانجم از او بگیرم هفتاد و پنج سنت را برداشتم گفتم ممنون رینک آهی کشید گفت جلو فلاست تو جمع کن و برو دفعی بعد که میبینمت میخوام یه آدم شاغل رو ببینم که با کمال میل میخواد هشتاد و سه دلار و هفتاد و پنج سنت قرضش رو به دوست قدیمیش رینک پس بده. اگه نشونی از این موجودی که الانه هستی در وجودت ببینم، ترتیبت داده است و مطمئن باش یه ماهی وسط آب میخوره. حالا هم بکشه گورتو گم کن. رینک همانطور داشت با نام بازکن و هر که زدم بیرون. شاید نام بازکن ایدهی به ذهنش بیاندازد و سر نخی به دستش بدهد تا معممای فاهشه ی مقتول را حل کند. آدولف هیتلر از دادسر آمدم بیرون و راهی نورس بیچ شدم بلکه بتوانم چند تا تیر از آن بچه خلافکاری که میشناختم شناختم به ساکن تلگرافیل بود در آپارتمانی در خیابان گرین زندگی می کرد. از شانس من بچه کلاش خانه نبود مادرش دمه در آمد تا پیش از این هیچ وقت مادرش را ندیده بودم اما می دانستم که طرف مادرش است چون راجع به مادرش کلی حرف زده بود مادر نگاهی به من انداخت و گفت، اون دیگه سر به راه شده، راتا به و برو، اون حالا پسر خوبی شده، برا بالا رفتن از دیوار مردم دنبال یکی دیگه باش، گفتم، چی؟ گفت، خودت میدونی که چی میگم، اون دیگه نمیخواد سرکارش با امثال تو باشه، حالا هم وقت کلیسا رفتنشه، اشای ربانی ساعت شیش، یک بانوی ایتالیایی کوچولوی پیر حدوداً 60 ساله بود. پیشبند سفیدی به تنش بود. گمانم درباره اینکه من چه تیپ آدمی هستم اشتباه کرده بود. گفت: تصمیم داره به ارتش ملحق شه. میدونی که میتونه. اون هیچ وقت واقعاً خلافی به اون معنا نکرده. فقط خلافای جزئی بوده. آدمایی مثل تو بودن که اونا وادار به به اونجور کارا میکردن. اون داره میره با آدولف هیتلر بچنگه. به, به اون هرومزاده حالی کنه قضیه از چه قراره؟ بعد هم در حالی که در را میبست نرزد که... برو پی کارت. برو به ارتش ملحق شو. به یه دردی بخور. هنوزم دیر نشده. دفتر سربازگیری همین حالا هم بازه. اگه پاد به هلوفدونی باز نشده باشه حتما جذبت میکنن. فکر کنم نمیدونین من کی هستم. من یه کارگاه یک سو تفاهم آشکار بود حیرت آور فکر کرده بود که من کلاه بردارم من فقط اومده بودم چند تیر قرض کنم خردل. هنوز هیچ گلولهی در کار نبود و گرست شده بود. خوراک آخرم آن دونات مندهی که از زن صاحبخانه تلکه کرده بودم به سرعت به تاریخ بیوسته بود. به یک اغزی فروشی کوچک ایتالیایی در خیابان کولومبوس رفتم و یک ساندویچ سلامی با پنیر سوئیسی و نان فرانسوی با یک آلم خردل سفارش دادم. اینطوری دوست داشتم با یک آلم خردل. 45 سنت از 75 سنت هم را به باد دادم حالا یک کاراگاه سی سنتی بودم پیرمرد ایتالیایی که ساندویچم را میپیچید، قیافه خیلی جذابی داشت به هر حال به نظر من که خوش قیافه آمد چون دوباره بنا کردم به فکر کردن درباره بابل و نباید پیش را می چون لازم بود به فکر پول درآوردن از قبل اولین مشتری باشم که از 13 اکتبر 1941 تا به حال به تور انداخته بودم سی عجب بازار کسادی آخرین کارم پیگیری یک پرونده طلاق بود یک شوهر 140 کیلویی میخواست از زن 140 کیلویش آتایی بگیرد فکر میکرد همسرش با کسی روی هم ریخته همینطور هم بود با یک مکانیک 140 کیلویی. ماجرایی بود برای خودش زنک چار ها بعد از ظهر به گاراژ طرف میرفت ماجرا قبل از آن زمانی بود که مجبور شدم دور را گرو بگذارم از پشت یک بیوک پریدم بیرون و بنا کردم کلیک کلیک عکس گرفتم باید میدیدید چه قیافهای شده بودند گفتم اه, یه خورده دیگه خردل روش بریز ایتالیایی پیر گفت تو حکما عاشق خردلی تو باس تاندهبیچه خردل خالی سیفارش بدی این را گفت و زد زیر خنده گفتم شاید مشتری بعدی اصلا خردل نخواد شاید از خردل متنفر باشه اصلا نتونه لب بزنه ترجیح بده گزارش به چین بیفته اما به خردل لب نزنه گفت واقعیا امیدوارم اینطور باشه من دارم کارو میذارم کنار دیگه ساندویچ بی ساندویچ پیرمرد ایتالیایی عین رودولف والنتینو بود البته اگر رودولف والنتینو هم ایتالیایی پیری بود که ساندویچ درست میکرد و از آدمهایی که خردل زیادی برای ساندویچشام میخواهند شکایت داشت خردل دوست داشتن چه اشکالی داشت من که میتوانستم دخترهای شش ساله را هم دوست داشته باشم بلا دوگوستی خیابان کورنباس را به سمت پایین برگشتم. ساندویچم را میخوردم و سمت پزشکی قانونی میرفتم. به فکر جای دیگری افتاده بودم که امکان داشت بتوانم از آنجا چند تا تیر تهیه کنم. البته بعید بود. اما هر کاری هم این روزها میکردم، بعید بود. از صبح که از خواب برمیخواستم همه چیز بعید به نظر میرسید شانسم یک به پنجاه بود که مسانم را اول صبحی بدون خیز کردن پر و پاچم خالی کنم. میدانید می که منظورم چیست؟ دوستی داشتم که تو پزشکی قانونی کار میکرد. اصله توی کشوی میزش نگه میداشت. اولین بار که این آدم را دیدم به نظرم، یه جورهای عجیب آمد. فکر کردم، آخر در این جسد آباد اسلحه میخوایی چیکار؟ احتمالش خیلی کم بود که بلالو با بعضی از رفقاش مثلاً ایگور بخواهند به اینجا حمله کنند تا چندتا مرده باند کرده و دوباره زندهشان کنند. یک روز از دوستم درباره آن اصللح سوال کردم چند دقیقه لب از لب باز نکرد واقعا داشت دربارهش فکر می کرد. به به حرف آمد. ماجرا از جنازه اون قاتل تبر به دست شروع شد. پلیس کلکشو کنده بود. بعد از اون که یارو همه شرکت کننده های بازی ورق رو گردن زده بود، بیست سال بوده که هر جمعه شب، تو زیر زمین خونش ورقبازی را می‌نداخته. تو خیابون دوره میگشته و تبرشو دور سر میگردونده که پلیس هشت گله حرومش میکنه. وقتی آوردنش اینجا واقعا عین مرده‌ها بود، اما قضیه به همینجا ختم نشد. داشتم میذاشتمش تو سردکان که یک هو پاشت نشست و دستش دستشو آورد بالا تا سر منم از تن جدا کنه. به خیالش هنوز تبر تو دستشه. با لگن تشریح زدم تو سرشو ساکتش کردم. پلیسو خبر کردم و اونا گفتن وقتی آوردنش اینجا واقعا مرده بوده. موقعیت ناجوری بود چون اونا حرف منو باور نمی کردن. فکر می کردم من یکی دو پیکی زدم و کل ماجرام خیال بافی بوده. گفتم نه شما یکی آوردین اینجا که مرده نبوده. منظورم اینه که این حرومزاده هنوز داشت جفتک می اون وقت رفیق رینک که با اونا بود گفت ای پاچو بی بذار یه چیزی رو بپرسم." گفتم بپرس. میخوام در کمال صداقت به این سال جواب بدی قبول؟ گفتم قبول بفرما تو یه آله سراخ گوله تو تن این تخمه هرون میبینی؟ گفتم آره اون حالا مرده؟ ما هممون دور جسد وایستده بودیم از بس گوله خورده بود قیافش خنددار شده بود گفتم آره حالا تو مطمئنی که اون مرده؟ گفتم آره رین گفت آره؟ گفتم آره گفت خب پس حالا فراموشش کن گفتم شما حرف منو باور نمیکنین ما حرف تو رو باور میکنیم ولی این قضیه رو به هیچ کس دیگه نگو. به زن‌ت هم نگو. گفتم من زن ندارم. چه بهتر که نداری. بعدم گذاشتن و رفتم قبل از اینکه برن خوب براندازم کردن. حرفشون حلم شد. اما با همه این حرفها اون هارومزاده زنده بود و من دیگه نمیخواستم به نعش هیچ قاتل و سارق بانک و دیوونه‌ای که پاش به اینجا میرسه فرصت خودنمایی بدم. هیچ نمی‌فهمی اونا کی هنوز نمردن. که یا فقط دارن نقش بازی میکنن یا تو عالم هپروتن یا چه و چه اما ممکنه یهو هوبه حمله ورشن واسه همینه که اون اسلحه رو گرفتم و تو کشای میز گذاشتم حالا آمادم دفعه بعد دوف از اینجاست که تیرهای مرد نیاز رو تحییه خواهم کرد تیرها را از دوستم پاچوبی میگیرم که در پزشکی قانونیگار میکند و اسلاحی دم دست دارد تا دخل مردها را بیاورد. 1934. یک هو یادم آمد همان روز سر صبح بنا داشتم تلفنی بزنم اما آن موقع پنج سنتی نداشتم و حالا به مرحمت گروهبان رینگ داشتم و بنابراین دم یک بادچهٔ تلفن ایستادم تا زنگ بزنم کسی که بنا داشتم به او زنگ بزنم خانه نبود و تلفن پنج سنتی هم را پسم نداد ده, ده تا مشت حوالش کردم حرامزاده خطابش کردم اما کارگر نیفتاد آن وقت توجهم به یک خورده خردری جلب شد که روی گوشی تلفن ماسیده بود و حالم یک خورده بهتر شد. باید بعدا دوباره زنگ می زدم. هفتاد و پنج سنت اولی هم داشت به باد فنا میرفت. اگر این اوضاع خندداری بود میشد کلی به آن خندید. به هر حال دیگر گرسنم نبود. باید سعی کنم حواسم سر جاش باشد. نباید اجازه دهم دوباره حواسم پرتی سراغم بیاید. اگر واقعا حواسم پرت میشد دوباره به فکر بابل می و آن وقت آ از این هم بدتر می شود. به آنی بابل همه ی فکر را ذکررا میشد. و وقتی بنای فکر کردم به بابل را میگذاشتم دیگر هیچ کاری نمی بکنم الا اینکه به بابل فکر کنم. اینطوری هم کل زندگیم از هم میباشید. و هر حال ه سالی هست که این بالا سرم آمده. از سال 1934، وقتی که فکر بابل به کلم افتاد